شب چهارشنبه سوری بار دیگر حسام را دیدم خیلی تصادفی آمده بود آتش بازی تماشا آتش بازی که چه ارز کنم؟ چهارشنبه سوری های قلع مرغی آدم را یتیم می کنند. از بعد از زور به این طرف که کار را شروع می کنند همینطور شیشه است که می پایین به دست کشت اکلی سورنج می توی در و دیوار حالا اینکه چیزی نیست نارجک های دستی درست می کنند کله گاو از اصلش هم بهتر این مال بازی هاشون از آن طرف وسط میدان مقدم آتش درست میکنن که نمرود بگوید غلط کردم بیشتر شبیه جنگ های خیابانی است تا جشن های باستانی حسام را سر بیست متری مقدم دیدم به ام گفت این کارا درست نیست گفتم چی گفتی؟ همش سی بیشتر با هم فاصله نداشت ولی صداهای انفجار به قدری زیاد بود که به زحمت صدا به صدا میرسید میگم این کاراشون اصلا درست نیست. کدوم کارا؟ این کارا همش وحشی بازیه. اصلش اینجوری نباید باشه. انگار داشت داد میکشید گفتم. چجوریه پس؟ باید یا آتیش کوچیک روشن کنن بعدش برن قاشق زنی. یعنی چی کار کنن؟ یعنی برن قاشق بزنن. به کجا قاشق بزنن؟ یه جور مراسمیه بچه ها داره هم جمع میشن با قاشق میزنن روی قوطی بعد از خونها پول جمع میکنن جدی واسه چی؟ چی واسه چی؟ میگم یعنی چرا به آدم پول میدن؟ رسم خوب رسم کجا بود؟ من اگر با چوب گردو توی سر خودم هم بزنم کسی مثل آقا جون یک دوزاری کف دستم نمیگذارد حالا شما حساب کنید یک قاشق بردارم توی نیمتریش به بکوبم روی قوطی عوض پول یکی میزره توی سرم که صدای سگ بدهم. واقعا قدیم ندیمها ملت برای چه چیزهای پول می دادند؟ فرصت خوبی بود که راجع به پول با حسان صحبت کنم اما حرفی نزدم چون اگر عشقش میکشید جورش کند میکرد. فاننگی تاریخ سررسیده چه که هنوز نرسیده بود چه کار داشتم بی خود خودم را سبک کنم؟ قصد داشتم اگر لازم شد اعتبارم را در جای مناسبتری خرج کنم. فقط وقتی داشتیم جدا می شدیم بهش گفتم که آخر هفته منتظر من باشد. به نظرم حرف دو پهلوی جالبی بهش زدم. شانسی هم که آوردم حسن دیگر دمپرم آفتابی نشد. جوری خیتو پیتش کرده بودم که اگر دوباره سر وقتم می آمد با قانون شکم سیری نمی‌خوند. با هر فلاکتی بود بالاخره پنجشنبه شد. اولش خواستم کار را تا شب کش بدهم. اما بعد با خودم گفتم که اگر این بی پدر و مادرها واقعا چک داشته باشند، نهایتا تا ظهر باید پول را به دستم رسانند. همه دنیا می دانند که بانک ها روزهای پنجشنبه از ظهر به بعد به مشتری ها راه نمی دهند. روی همین اصل سر ساعت یک مثل عجل معلق جلوی درشان سبز شدم. دو تا زنگ زدم خبری نشد. دو تا دیگر هم زدم. من همیشه دوتایی زنگ میزدم که حسن نیتم را به مردم ثابت کرده باشم چون معمولا آدم هایی که خبر خوبی ندارند یا اینکه قصد آشوب و مزاحمت دارند همهشان یک زنگ بلند و کشدار میزنند یا یک تک زنگ میزنند و پشپندش هم با مشت و لکت به در میکوبند یا جورهای دیگر ولی دقت کردم که هیچ کدام دوتایی زنگ نمیزنند کیه yeah. برقی شناختمش صدای نادر بود بابای حسام. اومدم! باز هم خود ناکستش بود. دهنش هم پر بود. چون وقتی توی دهن کفتی زهرماری چیزی باشه صدا آن مدلی می شود. یکی از خواهرهای اسام داد زد. کیه بابا نادر کی بود؟ این یکی هنوز در را باز نکرده. آن یکی داشت داد میزد زد کیه کی بود؟ خب مردم همین چیزها را از اینها دیدن که پشت سرشان این همه حرف و حدیث درست کردند. آقا نادر داشت لغمه را می جوید و یک بارگی به ذهنم زد که ای ده این اینها سر سفره نهار بودند و مسئله دهن پرآور نادر هم مستقیما به همین قضیه مربوط میشد این یک راز نیست ولی باید بدانید که اگر آدمی را از سر سفره نهار بلند کنید همیشه مقدار کمی از دستتان عصبانی است و تازه اگر بخواهید با همان توی صورتش زل بزنید و پول دستی بگیرید هر جور که بتواند این کارتان را تلافی خواهد کرد یک ثانیه خون به مغزم نرسید قبل از اینکه در را باز کند فلنگ را بستم و پشت یک مزدای هزار آبی پر از هندوانه پناه گرفتم. آقا ناده در را باز کرد و کلاش را مثل مرغ کچ دو سه بار این برا عام اما کجا من را پیدا می کرد؟ لنگ ظهری کسی دیگر هم توی کوچه نبود که خفتش را بچسبد. دوره گفت؟ کیه؟ پکر بود ولی از اینکه کسی جوابش را نمیدهدشهامتش بیشتر شد. انگار که دارد؟ نفس کش میتره داد کشید کی بود بیگم؟ خطرش شو بده؟ اگر جای او بودم توی یک کوچه خالی آنطور خودم را سکه یک پول نمی‌کردم. مرد گنده ولکنو معامله نبود به خدا قسم اگر من زنگ درشان را نزده بودم همه چیز را گردم می‌گرفتم و خلاص حسام تازه اینجا از در خانه بیرون آمد چی شده بابا کی بود؟ نمیدونم. آدمای بیکار علاف سر زرمی مردم آزاری زنگ زد و در رفت آره یکی کم بود حسام هم اناکب به داد و غالب. کی در زد؟ کی بود؟ <تصفيق> حسام خله دسته تو داد و بیداد دیگر کردند و سرآخر رضایت دادن که شر قضیه را بخوابانند از پشته وانت بلند شدم و حب جیم را خوردم ببینید سر چه چجوری خودم را ویلان کوچه ها کرده بودم از روی ساعت سر رو ور گشتم هر چقدر هم که دلی دل ایدل قضاشان غذاشان را زهرمار کنند نباید بیشتر از این طول میکشید. سر به پیش که الان که؟ دوباره رفتم زنگشان را زدم. طبق معمول دوتایی به محض اینکه دستم را از روی زنگ برداشتم فهمیدم که چه غلطی کردم. اگر همماجا میستام حتما بو می بردم که سری پیش هم کار کار خود گردن شکستم بوده. حالا آن وقت چجوری باید حالیشا می که آن دفعه فقط به خاطر یه سری مسائل انسان دوستانه جیم شده هم. وقت زیادی برای فکر کردن نداشتم. اولین کیه رو که شنیدم دوباره پریدم پشت همان مزله هزار آبی. هیچ وقت فکر نمی کردم که دوتایی زنگ زدن این همه دردسر مخصوص به خودش داشته باشد. بز آوردم. باز هم بابای حسام در را باز کرد. حالا هیچ وقت خودش این همه جلوی در نمی‌آمد ها. همیشه یا خود حسام در را باز می کرد یا آن خواهرش که گفتم از توی حیات نعر کشید. ولی این سری مثل بگویم چی؟ خودش می‌آمد در. کلم را از پشت میله‌های آهنی ماشین بیرون کردم که دورا دور کشی کش را بکشم. داد زد. کیه؟ دوره همان و همان کاسه. شروع کرد به ماق کشیدن. جدا میکشید. اگر کسی نمی‌دانست که ظرف یک ساعت گذشته این دومین است که منتر یک الف بچه شده است حتما فکر می کرد به سرش زده باشد. میگم کیه؟ کیه؟ کیه میگم کجا رفتی عوضی؟ کم کم داشتم می ترسیدم قضیه بدون اینکه برای من فایده ای داشته باشد رفته رفته داشت بیخ پیدا میکرد سری هیچی؟ پس کجا قایم شدی بی شرف؟ دکی شورش را در آورده بود این حرف را دیگر ازش به دل گرفتم. من خودم به تنهایی نه بی شرف بودم عوضی. شرایط به صورت کاملا اتفاقی از من چون چنین موجودی ساخته بود. من در آن لحظه فقط آدم بدبختی بودم که به دلیل اشتباه محاسباتی پشت یک مصددای آبی گیر افتاده است. افسوس که هیچ وقت نتوانستم این موضوع را به کسی توضیح بدهم. نادر همچنان مثل خروس اخته داشت قیه می کشید. دوباره حسام از خانه بیرون آمد. به خوشگی شانس. نمی نمی‌دونم آن روز این نامرد چرا این همه دیر سر می رسید. اگر خودش در را باز کرده بود من الان این همه خفت نمی کشیدم. خون باباش هم بی خودی کثیف شد. پدر و پسر دوباره بنا گذاشتن به هوار. اینقدر زوزه کشیدن که بالاخره کاری که نباید میشد شد. آب افتاد تو سوراخ مورچه. آرام آرام صدای قیشقیش پنجره ها بلند شد. الانه بود که از هر پنج شش جفت چشم مسلح بیرون بریزد. خطر تا بیخ گوشم رسیده بود. جدا وقت نداشتم اگر چشم کشام به جمالم روشن رو می شد دومم را میگرفت و ساخت می میداد. نادر هم لابا جا با به جا بهجا خخ را می جوید. خیز برداشتم زیر ماشین و سینمال کمی جلوتر رفتم. به خاطر وزن هندوانه ها که بود پشت ماشین به زمین گیر کند. مردم نبود کدام شیر پاک خورده ای می میخواست این همه هندوانه را بخورد. به سختی خودم رو روی زمین میکشیدم اما باز هم شک داشتم که نکن سر لنگم از ماشین بیرون مانده باشد برای همین پاهایم را مثل غباغه از زانو به طرف بیرون خم کردم دلم نمیخواست مجبور بودم آنهایی که حداقل یک بار توی عمرشان زیر از ۲ آبی گیر کرده باشند میدانند که این ماشین از آنهاش نیست که بتواند جلوی روغن ریزی خودش را بگیرد تازه این یکی آن همه هم پشتش بار شده بود حالا بوی روغن و بنزین دارد حالم رو به هم می زند این مردی که لننده هم وسط کوچه دست بردار نیست. اگر آن زیر گیر میافتادم هر وصله ای که فکرش رو بکنید بهم به می چسبید. از دزدی هندوانه بگیرید تا سرقت ماشین و مردم آذید. آن وقت بود که ملت با همکاری هم دودمانم هم را جلوی چشم قطار میکردند. یا مثلا اگر قاسم بایقوش صاحب همین مزدا به سرش میزد ماشین را جابجا کند تمام حیثیت هم جابجا میشد. صدای زن میانسال نازکی نازاکی خورد. نازک که گفتم مربوط به صداش می شود نه اون زنی که چون من تو همین الان هم نمیدانم صاحب صدا اصلا کی بود؟ زنه از پشت پنجره خانه روبروی حسابین اینها داد کشید نهوب دیقا نادر با این حرفش حسابی شیرش کرد گفت چه میدونم مردده که بی همه چیز؟ هی hey زنگ میزنه در میره؟ حالا نادر یک ساعت بیشتر است که وسط کوچه معرکه گرفته و بدون اینکه کسی سوالی ازش بکند دارد سیل تا پیاز ماجرا را با آن صدای قزمیتش برای همه تعریف می کند. زنی که سرش را از پنجره کرده بیرون که چی؟ نه اولوبدی آقا نادر. مردم داشتن کم کمک جمع می شدند. هر کسی هم که میآمد گرده نادر جمع می شد. انگار که دارن حلوا خیرات می کنند. با همین دوتا چشم خودم ا اگرن سی نفرشان را دیدم که نسبت به پنجشنبه بعد از ظهر که بیشتر مردم باید خواب باشند آمار خوبی به حساب آید. با همین دوتا چشم خودم اگررا سی نفرشان را دیدم که نسبت به پنجشنبه بعد از ظهر که بیشتر مردم باید خواب باشند آمار خوبی به حساب میاید. از زیر وانت کتاب ما ملت بیشتر معلوم نبود ولی از نظر جانورشناسی ورشناسی آخره هر دو تا مچپا مال یک نفر است حالا شما حساب کنید این همه آدم گنده سر زهری چطور خودشان را اعلی این نادر کرده بودند دیگر نتوانستم طاقت بیاورم فاری یک چیزی نظر از امامزاده کردم. کردم امامزاده خیلی خوبی است معجز دارد بچه‌تر که بودم یک بار هم توی خوابم آمده بود که حالا درست یادم نیست چه کارم داشت غیر از مسائلی که مستقیما به پول مربوط می شود خودم تا حالا همه جور حاجتیم هم ازش گرفتم اول همه میخواستم ده هزار تومان ناز کنم ولی چون آن لباس هایی که من میدیدم دیگر برایم لباس بشو نبود با دوویست ما سرطهای قضیه را هم آوردم. دوویست و تکتومانی از نظر اقتصادی من آه در وسط نداشتم وگرنه اگر یک آدم پولدار به جای من بود بعد خیلی بیشتر از اینها سرکیسه را شل میکرد. استرس کار زیاد بود. وسط این هیروویر فقط حسین تنردیه کم بود که آن هم سر رسید. از چوب دستی آن لحجه ترکیهش شناختم حسین، یک چرخ توافی دارد که همیشه رویش گوجه می فروشد. خیلی جزئی نه مثل این قاسم بایغوش ابله که یک میدان ترهبار را پشت جا می کند. به همه کار هم کار دارد بعضی وقتا پیش آمده که به خاطر تماشای یک دعوا تا چند کوچه بالاتر هم رفته باشد و چون یک دندان توی فکه پایین بیشتر برایش باقی نمانده بهش حسین تناردیه میگویند داد زد آیوغ لانست بو سرسولار این قضیه استی نمدی؟ ای بر پدر و مادر هرچی آدم بد پیله زبان نفهمست لعنند دیگر هیچ کسی توی محل نمانده بود که ترکی و فارسی همین را نپرسد. اگر چند دقیقه خفخون می گرفتند کل مطلب از لابلای حرفای نادر دستگیرشان می شود. نیاز به این همه ولوله نبود نادر را بگو انگار که آمده باشد به جنگ جن مازندران چپا راست به هم می بافت. از حق هم غیر از غیر اینکه گفت. بالا عوضی از صبح تا ده دفعه اومده زنگ اونو زده در رفته بقیه حرفاش را خودم هم قبول داشتم. حتی بعضی از فش هاش همه نظر منطقی می رسید. اما به هر حال چون با دشمنی فرضی در افتاده بود دیگر بیشتر از این نمیشد جلو ملت خودش را رو سنگ رویخ کند. یواش یواش فتیله را پایین کشید و با آن بچه عقب افتادش برگشتن خانه تا ثانی ای آخری هم که در را پشت سرش کیب کند داشت فحش و فضیحت میکشید. جاهای دیگر را نمیدانم اما توی قع مرغ بر این است که اگر دعوای ناموسی و قداره کشی نباشد، بعدش جمعیت تقریبا با همان سرعتی که آمدند بخشو پرا میشوند به خداوندی خدا اگر حسام پول را جیرینگی کف دستم نمیگذاشت کاریش میکردم که رب و را یاد کند همه این بدبختی رو داشتم به خاطر چک بابای قالطاغش تحمل میکردم کوچه دو مرتبه آرام شد اما من اطمینان نکردم چند دقیقه دیگر صبر کردم که آبها قشنگ از آسیا بیفتند من که آن آن زیر علاف شده بودم این هم روش از طلاق به این ور هر وقت اینطوری احساس بدبختی وقتی می میکنم از ته دل پدرم را نفرین می کنم الان اگر بود لاباد یک چکی چیزی که سررسیدش مال پنج ظهر باشد توی دست و بالش پیدا میشد که من هم مجبور نباشم از خاطر 2010شایی این همه شلتاق بزنم. اگر پول تا شب جو نمیشد روی مسئله حفظ حرمت پدر و مادرها تجدید و نظری کلی میکردم هندانه که اول کاری آن همه دردسر درست کرده بود موقع بیرون آمدن کمک بزرگی شده بود سر ماشین مثل این تانک های روسی تا کجا بالا رفته بود همونطور سینهخیز میآمدم آرام و با احتیاط تمام لشم را یک کم یک کم نجات دادم همه داشت خوب پیش میرفت که لحظه آخر از ایر به سیبک ماشین گرفته از روی قوزک پا غلوه کن شد شلوار به آن مهمی غلوکن شد آدا شبهایدی این یکی رو کجا دلم میگذاشتم خودم را از آن زیر خلاص کردم و مثل فشنگ از کوچه زدم بیرون. یک نفس میدویدم. اینقدر دویدم دویدم که بالاخره بغزم ترکید ترکیید. اینکه بغز چیزی نیست که بخواهد با دویدن یا هر چیز دیگری به ترکید اما چون من از قبل بغز داشتم وقتی دویدم ترکید. پل پل اشک میریختم. در زندگی لحظاتی هست که گریه چند تا چیزی که جدا جدا خیلی به چشم نمیآید یک جا میآید. خودم هم توی باغ نبودم که چرا هم حالی بهم دست داده است. اما اگر بخواهم آن دلیلی که از همه مهمتر است را بهتان بگویم باید بدانید که قضیه به سر و وضع بود می میشد توی آن حال اوضاع وضعیت شخصیتی هم در خانه در حدی نبود که با لباس‌های روغنی و پار پوره از ازم به گرمی استقبال کنند پاره بودنش سرم را بخورد میشد یک کاریش کرد ولی روغم مگر به همین سادگی می همان همانطور گریه کنان تا لب خط تهران تبریز دویدید از لای نرده ها رد شدم و رفتم روی ریل جا خوش کردم چون اگر ماگر بودم باز هم ادامه بدهم دیگر معلوم نبود از کجا سر در بیا برم نمی شد که تا قیام قیامت دوی